برلین آلمان 3 نوامبر 1992 هیلمود در سالن انتظار فرودگاه برلین به استقبال آمد ساکم را برداشت و به راه افتاد من هم دنبالش رفتم اتومبیلش را در پارکینگ فرودگاه پارک کرده بود وقتی سوار شدیم گفت به طرف بیمارستان می رویم. تعجب کردم مختصر توضیح داد شخصی که او را به دنبال من فرستاده بیمار است و در بیمارستان منتظرم می باشد مثل همیشه مراقب بود درباره هویت آن شخص چیزی به من نگوید. تمام مسیر در سکوت کامل طی شد. بالاخره رسیدیم و از اتومبیل پیاده شدیم. از سکوت ابهامانگیز این وکیل و موکلش به شدت عصبانی بودم. خشم سر را گرفته بود چون او زندگی منو به هم ریخته بود. احساس می‌کردم به محض اینکه اش را ببینم از شدت عصبانیت منفجر خواهم شد. وارد بیمارستان شدیم. با آسانسور به طبقه سوم رفتیم. وکیل من را به اتاقی در انتهای راه روبرد در را رو باز کرد و وارد شد. اما من در جای خودم بی حرکت ماندم. در را باز نگه داشته بود و با سر به من اشاره می کرد وارد شوم. به این فکر کردم که این آخرین فرصت من برای برگشتن است. از روبرو رو شدن با شخصی که داخل اتاق منتظر من بود می ترسیدم. دلشوره داشتم. سر ماندم و تکان نخوردم. گوی کاملا فلج شده بودم. به هیلموت نگاه می کردم که گیج به نظر می رسید. علت توقف من رو درک نمی کرد. چند لحظه گذشت. از فرق سر که انگشتان پایم میلرزید، احساس سرگیجه می کردم. نرزش پاهایم به قدری زیاد شد که نزدیک بود روی زمین بیافتم. نفس عمیقه کشیدم. دستم را مشت کردم تا نیرویم را جمع کنم. تصمیم گرفتم وارد شوم. را دیدم. روی تخت دراز کشیده بود. بالشتی پشتش قرار داشت و سرش کمی بالا بود. حس کردم او هم با ترس منتظر ورود من بوده است. در آن صورت لاغر و رنگ پریده و آن چشمهای از حدقه درآمده چیز دیگری نیافتم. به او بزر زده و در اجزای صورتش دقیق شدم. با دیدن سر بیمویش یک خوردم. با نگاه‌های متعجب من فضای اتاق کمی سنگین شده بود. هیلموت سکوت غم‌انگیز اتاق را شکست و گفت: لیلی این گریتاست دختر هیلدا خالت کلماتش در گوشم زنگ میزد گریتا هیلدا خاله هم. با صدای کلوفت و خشنی که شگفتی هم از دیدنش در آن وضعیت رو بیشتر می کرد به من خوش آمد گفت. خوش اومدی لیلی به صحبت کردن ادامه داد بابت این وضع ظاهرم آزر می خوام. من دیگه روزهای آخرم رو می گذرونم. دوست داشتم تا وقتی که کمی سرحال هستم همدیگر رو ببینیم. همچنان سعی میکردم خودم رو کنترل کنم و آرامشم را از دست ندهم. آب دهانم رو گرد دادم و نفس عمیقه کشیدم. بالاخره توانستم با آرامشی که خودم هم انتظار نداشتم شروع به صحبت کنم. تو کی هستی؟ از من چی میخوای؟ من گریتا هستم. مادرم هیلدا، خواهر لیلیان مادر تو بود. فکر کنم هیلمود. مدارکی رو که نشون میده تو دختر لیلیان هستی بهت داده و فکر میکنم این مدارک برات کافی بوده چون در غیر این صورت الان اینجا نبودی. خب لیلیان کجاست؟ چرا الان با من تماس گرفتین؟ لیلیان حدود پنج سال پیش از دنیا رفت. هیلدا هم فوت کرده. از بچه های جنرال اشمید فقط من و تو موندیم. بعد لبخند بیرمقی زد. و به زودی تو میشه تنها بازمانده ی این خانواده. و باز ادامه داد همین که متوجه شدم یک دختر خاله دارم از هیلمود خواستم دنبالت بگرده و باهات تماس بگیره به محض اینکه محل زندگی تو رو پیدا کرد دنبالت فرستادم پیدا کردنت اون هم با هزاران مایل فاصله کار آسونی نبود اما مدارکی که از لیلیان برامون مونده خیلی کمک کرد تا پیدات کنیم از من چی میخوای؟ هیچی تو چیزی نداری که من اون رو از تو بخوام من فقط فکر کردم این حق توه که حقیقت رو بدونی و کی بهت گفته که من دوست دارم این حقیقت رو بدونم؟ پس میخوای بگی ترجیه می توی توهم زندگی کنی؟ آن صدای کلوفت که هنوز از شنیدنش متعجب بودم لحن ترس به خود گرفت. البته اکثر مردم دوست دارن در وهم و خیال زندگی کنن. تو زندگیم رو به هم ریختی؟ من تمام زندگیم دنبال پدر و مادرم گشتم. هر روز به این فکر میکردم که اونها کی بودن و چرا منو رها کردن. تا وقتی همه جزییات جزیات رو نفهمیدم آروم نشدم. فهمیدم پدر و مادرم من رها نکردن. ما رو به زور از هم جدا کرده بودن. وقتی دنبال اونا میگشتم متوجه ارتباط داستان زندگیم با تو شدم. فکر کردم تو هم مثل من میخوای جواب سوالاتت رو بدونی. من هیچ وقت احساس نکردم رها شدم یا ترکم کردند. نه بذار تصحیح کنم. تو از روزی که وکیلت رو فرستادی سراغم باعث شدی من احساس کنم یه بچه سر راهی و رها شده هستم. گریم گرفته بود. دوباره تکرار کردم. تو زندگیم رو به هم ریختی. خب من نمی‌خواستم اینطور بشه. من وقتی حقیقت رو درباره‌ی خانوادم فهمیدم از این دنیا بیزار شدم. می خوردم که چرا قبل از اینکه من ببینمشون و از زندگی به اونها لذت ببرم از دنیا رفتن او هم شروع به گریه کرد شاید این کارم خودخواهی بود که با تو تماس گرفتم میخواستم با تنها هم خون خودم تنها کسی که از بستگانم مونده بود ارتباط داشته باشم تو می دونستی من هیچ چیزی نمی دونم. من زندگی خودم رو داشتم یا به قول تو زندگی خیالیم این ندونستان هیچ ضرری به من نمی رسوند. وقتی هر دو ساکت شدیم و دیگر حرفی نزدیم هیلموت گفت بشین لیلی روی صندلی کنار تخت نشستم دوباره به چهره که حالا رنگ پریده تر هم شده بود نگاه کردم وضعیت که او باعث شد هم کم شود سکوتش طولانی شد با دقت به من نگاه می کرد. لبخندی زد و گفت ما خیلی شبیه هم هستیم دستش را به طرف میز کنار تختش دراز کرد و یک عکس از روی آن برداشت و به من داد این عکس منه قبل از بیماریم اون وقتایی که زیباتر بودم دختر خاله یه تو که دو سال ازت بزرگتره نه این پیرزن بیچارهی که منتظر مرگشه به عکس نگاه کردم دختر جوان بود با یک دست دو را نگه داشته و با دست دیگرش جام قهرمانی را بالا برده بود من قهرمان دوشرخه سواری آلمان شرقی بودم لبخندش بازتر شد توی المپیک سئول هم حضور داشتم و بعد کمی چهره غمگین شد فقط چند لحظه تو مسابقاتش شرکت داشتم اما بعد از اینکه از روی دوشرخم به زمین افتادم سرنوشتم به کلی تغییر کرد یا بهتر بگم کلا زندگیم تموم شد دلم برایش سوخت اما کمی در مقابل اما سعی کردم در مقابل این احساسم مقاومت کنم او باعث شده بود احساس کنم همه زندگیم هم یک دروغ بوده است میخواستم همچنان از دستش عصبانی باشم اما دیگر آرام شده بودم و به نظرم این برایم بهتر بود که همه چیز را بپذیرم فکر می‌کنم او هم از حالات شهرم فهمید که من حالا دیگر نسبت به لحظه ورودم به اتاق نرم‌تر شده‌ام وقتی حرف میزد صدای خشن و مردونه‌اش ازیتم می‌کرد با تعجب دیدم که خودش هم درباره این موضوع از من سوال کرد از صدای خشن من تعجب می‌کنی احساس کردم چهرم از خجالت سرخ شد. با عجله گفتم، نه اصلا. میدونم خیلی عجیبه و خیلی هم قرنگیست. لازم نیست خجالت بکشی. این به خاطر تحصیلات تسترون هست، قرص آبی. من از 15 سالگی هر روز این قرص رو به عنوان قرص ویتامینه می خورم. اونها به من نگفتن که بدون اطلاع خودم دارن من رو به یک مرد تبدیل میکنن. یک آدم پرمو با صدای مردانه و جسم لحظی سکوت کرد و بعد انگار داشت با خودش زمزمه میکرد. هدفشون فقط درو کردن جامها و مدالها بود حتی به قیمت قربانی کردن یک انسان در راه کسب این قهرمانی. دوباره رو به من کرد. غم از سر و رویش میبارید. تا سالها از اینکه که من رو به یه آدم دیگه تبدیل کرده بودن خوشحال بودم. اونقدر از قهرمانی هام سرمست بودم که هیچ, چیزی، هیچ وقت چیزی ازشون نمیپرسیدم. خودم هم شریک جرم هستم فقط وقتی که دیگه رحام کردن از دستشون عصبانی شدم همون روزی که وسط مسابقه زمین افتادم بعدش هم اونها رفتن یه آدم دیگه پیدا کنن تا بتونن تغییرش بدن به خودم اومدم دیدم دارم به آرامی بر پشت دست او میزنم. صورت هر دوی من خیس اشک شده بود عجیب نبود که با شنیدن قصه تلخ زندگیش آن طور حالم دگرگون شود نسبت به او احساس مقدار داروهایی که استفاده کرده بودم خیلی زیاد بود و همین داره جسمم رو از بین میبره این هیکل ورزشیم کاملا ضعیف و شکننده شده اعضای بدن من تحمل این همه سم رو نداشت مرگ من نزدیکه و هیچ بیماری خاصی دلیل اون نیست دلیلش فقط تحلیل رفتن و نابودی کامل همه اجزای بدنم هم هست میدونی چی از این هم غمنگیستره؟ این اینکه همه دنیا از کارهای اونا خبر دارن. بله اونها می دونستن اما تصمیم گرفتن فقط تشویق کننده باشن هر وقت که ما از سکوی قهرمانی بالا میرفتیم برامون دست می میزدن کسی دخالت نمی کرد اونها اعتراض نمی کردند برای اینکه تنور و مسابقات داغ بمونه و موازنه قدرت به هم نخوره حضور هیلموت را در اتاق به کلی فراموش کرده بودم بصرفه کجا متوجه او شدم گفت نمیخوای به لیلی بگی دقیقاً ازش چی میخوای ببخشید، نمیخواستم درباره وضعیت خودم اینقدر طولانی حرف بزنم. ببخشید لیلی، باور کن نمیخواستم با داستان زندگیم ناراحتت کنم. دوباره دستش رو به طرف میز برد. این بار یک پاکت از روی آن برداشت. گوشه های پاکت به خاطر گذشت زمان کهنه شده بود. وقتی رفتی خونه این نامه رو بخون. مادرت لیلیان اون رو نوشته. با این نامه آرامشت رو پیدا می‌کنی. شاید این نامه برات توضیح بده چرا دنبالت و اصلا چرا فرستادم دنبالت. بعد رو به هیلموت کرد و گفت ویولون رو بده به لیلی. هیلموت یک کیف قهوهی مخصوص ابزار موسیقی در دستم گذاشت و بازش کرد. یک ویولون چوبی براق درون کیف قرار داشت که تارهایش آشکارا شل شده بود. مادرم هیلدا نوازنده ماهر و مشهور ویولون بود. این ویولون محبوبش بود و اونطور که توی دفتر خاطراتش برام نوشته ویولون خیلی با ارزشی هم هست. بله هیلدا از روزی که از من جدا شد هر روز برای من نامه مینوشت. خونه که رفتی دفتر خاطرات اون و لیلیان رو می‌بینی. باید همه رو بخونی تا درباره اون دوتا بیشتر بدونی. روزگار به اونها ظلم کرده اما هر دو فوق‌العاده بودن. اونها هم مثل همه مردم اشتباهاتی داشتن اما هیچ وقت کسی را عذیت نکردن. احساس کردم گیری تا دلش می‌خواست باز هم حرف بزند اما جلوی خودش را گرفت. تونتون نفس میکشید. به من کرد و گفت این فیورون یکی از یادگارهای مادرمه اون متعلق به مادران ما دوتاست ازت میخوام اون رو بفروشی اونطور که از نوشته های مادرم فهمیدم باید خیلی گرون باشه میخوام سهم خودم رو به ورزشکارهایی که بخو... مثل من به خاطر قهرمانی های مهم آسیب دیدن هدیه کنم اگه قبل از فروختنش از دنیا رفتم وصیتم اینه که سهم من رو به قربانیان المپیکی آلمان شرقی اهدا کنی صدای هیلموت را شنیدم که به من گفت فردا پیش یه متخصص میبرمت برای قیمتگذاری ویولون اون میتونه برای فروش این ساز به ما کمک کنه